اعتكاف از فردا شب ان شب 21 قبل از غروب داخل مسجد باشید مرتضیفی محترم شب 21 قبل از غروب باید داخل مسجد باشند اعتكاف یکی از اول اسلامی و احکام ما هستند اولی اینه دانی بدون روزه نداییم هرکسی اعتکافی قضا اسو یا اعتکاف خاصی کنه نذر کرد اعتکاف میکنه باید روزه بگیرد کسی نظر کرد، قبلا موشکال و سه من اعتکاف میکنم بعد روزه بگیرد اعتکاف کردن یکی از اعمالی هست که انسان رو به خدا نزدیک میکنه قلبش فارغ هست عبادت میکنه خلوت بزینی گاه خیلی خوب هست نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و قبل از اینکه به پیغمبری مبعوث بشند در غارهلا اعتکاف میکردند تنها عبادت میکردند تا اینکه اسلام آمد بعضن اعتکاف مان اعتکاف می‌کردند و در زمان کفر هم اعتکاف بود در مسجد الحرام اعتکاف میکنند. و پس بنابراین اتکاف یکی از که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به تأکید اتکاف میکردن خیلی می میکردن برای اعتکاف را همیشه خودش اتکاف مینشستند و از واج مطهرات هم اتکاف میکردن از واج مطهرات داخل مسجد آمدن خیمه حاضر زده نبی کلی نهار برداشت الله بن اتکاف را میکنه اون رو من کردم حالا بعد از نبی کلی از واج هر سالی اتکاف مینشستند. حالا اعتقاف نشستن داخل محلی که مسجدی که نماز میخوانی بهترین اعتقاف اعتقاف در مسجد الحرام هست که الله برای هرکس اینکه نمیرسه بعد اعتقاف بعدی در مسجد نبی هست خدا نصیب کند در مسجد بیت المقدس هست جاهای مقدس و هستند هستن یا حالا مسجد جامعه هست مسجد محلیتان هست هر جا بود اعتقاف بکنید. خانم‌ها کجا اعتکاف میکنن در جایی که نماز میخونه همیشه نماز میخونه همون متوازی همیشه نماز میخونه باید خانم هم در خونه یک جای بر نماز خودش داشته باشه همیشه همونجا نماز بخونه جای تغییر میکنه همونجا اعتکاف بشینه اعتکاف کنه شاستی خیلی چیزها حرام میشن حالا گناه حرام میشه هم بستری حرام میشه و بیرون رفتن از محل اعتکاف جائز نیست اگر کسی از محل اعتکاف برای بیرون اعتکافش باطل میشه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم وقتی که اعتکاف بودن و سر مبارک نیاز برایش شستند داشتن که خون داخل مسجد باز, باز, باز بود سر منجا میوردن سر بیرون میکرد حضرت عایشه رضی الله عنها سر نبی کریم را میشستن میزدن اما خود نبی که بیرون نمی پس پس موتکفین محترم المسجد نرم بیرون حالا میگه ما دوش میگیریم حالا ما در چیر گرفتیم بو گرفتیم حالا بو نمیگیری اینجا کولر ها روشنه اگر بو هم بیگیری حالا تحمل کنی چه 10 روز زیاد نیست ده روز بو کسی نمیگیرد. حالا اتکاف توری از مسجد نری بیرون و در مسجد باید اتکاف بکنید رفتن بیرون جایز نیست اگر رفتی بیرون اعتکاف تو میشکنه یک لحظه هم بری اتکاف میشه کنم وقتی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه سلام برای غسل کرده نرفتن سر و بیرون می پس ما چرا بریم حالا اگر خیلی کسی ناچار شد در حیات مسجد اونجا خود را بشورد یک گوشه مسجد بشورد دوباره مسجد تمیز بکن اما بیرون نرواد یک روزی حضرت صفیح رضی الله تعالی نها امو المومینین اما برای ملاقات نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم سلم مسجد آنها حزت اعتکاف داشتن داخل مسجد آمد ملاقاتی که صحبت کرده واهند بعد از اون دیگه رفت بیرون رفتن بیرون در مسجد, در مسجد نبی که تشریف بردن بیشتر تشریف نبرد همونجا ایستاد و بدرقهش کرد اگر جایز بیرون بیروتر میرفت و بدرقه نمیکردن گفت تو داخل خونه میرسونا همونجا ایستادی بود که دو نفر از صحابه کرام راسون فرموده علار رسل کو بر جایتان بی این خانومی که اینجا رفت بیرون این همسر من بوصفیه بود گفتی یا رسول الله ما شک میکنین گفت بله شیطان در ریشا انسان جریان داره شر و وسواس در قلب انسان پیدا بشه و انسان حالات مشغله نسبت به نبی کریم بعد دوبار میشود پس اونجا نبی مکرم اسلام نرفت بیرون پس اتکاف بیرون نروید وی. همون اگر خانمی اجازه گرفت از آغا بر اتکاف و اجازه بگیره بدون اجازه اتکاف نکنه. اگر آغا اجازه دار در محله بیشی. انجوری نیست که حالا در اوتار اتکاف کرده همونجا میره به سلاح حالا هم, هم جاروی میزنه زرفوارها هم میشود. دوستان دو آب و هلف میده دواره هم خیاطیشو که بیم اتکاف. این کدش اتکاف از کاره دست میاد. بعد هم اگر خانم در هنگام اعتکاف اگر عادتهای ماهانه شروع شدن اعتکافش باطل می شود بعد حساب را بکشد اگر میدونه دونه تا این ده روز چیزی نمی آید بعد اعتکاف کنه اگر عادت شد اعتقاف باطل می شود بعد هم وقتی اعتقاف کرد از خود همبستری و تمام لوازمات هم باید پرهیز کنم همبستری نباید یک جا نخوابن فاصله بیه. توی یک اتاق اشکال ندارد. اما زیر یک لحاف اشکال دارد و نباید این باشه اعتقاف باطل میکنه حالا از روز بس قبل از غروب داخل مسجده تا دیدن ماه شوال هرگر ماه شوال مشاهده شده اعتقاف شما تمام شده و می توانید بری بیرو تا زمانی که ماه مثل ماه شوال مشاهده شده، اعتقاف تمام نیست اعتقاف بشینی اگر از کسی اعتقافش به هر صورتی باطل شده در این صورت یک روز بعدن بعد قضا با روزه واجب غذای را بگیرا